به کوی میکده هر سالکی که رهدانه است دری دگر زدن اندیشه ی تبهدانه است زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی آلم در این کل است براستانه ی میخانه هر که یافت رهی ز جام می اصرار خان قهدانه است هران که راز دو آلم ز خط ساغر خواند رموز جام جم از نقش خاک رهدانه است ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب که شیخ مذهب ما آقلیگ و نهدانه دلم ز نرگس صاغی امان نخواست به جان چرا که شیوه آن ترک دل سیہ دانه است ز جور کوکب طالع سهرگهان چشمم چونان گریست که ناهید دید و مهدانه است حدیث حافظ و ساغر که میزند بنهان چه جای مهتسب و شنه آچب دانه بلند مرتبه شاهی که نهرباق سپه نمونهی زخم تاغ بارگردانه است.